نام توتیانوس حکیم پس از این که در ایران به دین زرتشتی در آمدن دادند که با خود به کشور هند و یونان بردن علاوه بر این نسخه های بسیار در طول زمان در آتشکده های معروف آن زمان جهت رونویسی و مراجعه ضبط شده بود البته اون زمان هنوز کاغذ و چاپ و دفتر و اینها به طرزی که امروز متداول نبوده و علوم را مردم سینه به سینه انتقال می دادن. یعنی معلم میخند خوند بچه گوش می دادند و دوباره تکرار می کردن. و این اصنادی که در کتابخانه های معروف ایران گذاشته شد این برای این نبود که هر روز مردم بران از روش اوستا بخوانند این برای سند و حجت بود که اگر اختلافاتی در خواندن بعضی عبارات پیش میآمد رجوع میکردند به اونجا و اصالت کلام اوستا را رد می‌کردند علاو بر این نسخه های بسیاری در طول زمان در آتشکده های معروف آن زمان جهت رو نویسی و مراجعه ضبط شده بود مورخ یونانی هرمیپوس در قرن سوم پیش از میلاد میز کتابی کتابی درباره آین ایران نوشته که امروز در دست نیست ولی پولینیوس مورخ رومی که در قرن اول میلادی میزیسته در کتاب خیش که به نام تاریخ طبیعی معروف است از کتاب هرمیپوس صحبت میدارد و میگوید که او آیین ایرانیان را از روی کتاب مذهبی خودشان که زرتشت در دو هزار, هزار شعر یعنی دو میلیون شعر سراییده است به دقت مطالعه نموده در کتاب مروج الزهاب کتاب اوستا در دوازده هزار پوستگاه با تلا نوشته شده بود محمد جریر تبری یکی از مورخین نیز که در سال سی هجری می در تاریخ خود از دوازده هزار پوستگاوی که عوستا روی آن نوشته شده بود صحبت می دارد عبدالرحمن ابن خلدون که در سال هفتد هجری در تونس تولد یافته در فصلی که مربوط به علوم اقلیه و اقسام آن می باشد چنین می نویسد ما بین امتهایی که اخبار و تواریخ احبارشان به ما رسیده حالا این شخص خودش عرب بوده ما بین امتها کتابی که به ما رسیده اقوامی که از همه بیشتر به علوم عقلیه توجه نمودند همانا دو قوم بزرگ پیش از اسلام یعنی ایرانیان و یونانیان بودند اهمیت این علوم در نزد ایرانیان به مناسبت عظمت فرهنگ ایشان و طول مدت سلطنت آنان و بسعت دامن دین آنان بوده است گویند وقتی که اسکندر دارا را بکشت و سلطنت ایرانیان را برانداخت بر کتبی که بی حد و بی بود دست یافت دستور داد قسمتی از آن را بسوزانند و قسمت اعظم آن علوم را از ایران به یونان انتقال دهند همزه اصفهانی نیز گوید چون اسکندر بر ایران غلبه یافت چون دید که هیچ امتی را چنان دانش و علومی که ایرانیان دارن مسلم نیست رشک برده و اون چرا توانست بسوخت و هرچه بایسته بود به زبان یونانی منتقل نمود قدیمی ترین این گونه نامه تنسر از دانشمندان نامی زرتشیان و هیربدان هیربد اردشیر بابکان است که تقریبا در 1700 سال پیش به پادشاه تبرستان جسن اش نوشته و در آن میگوید میدانی که اسکندر از کتاب دین ما دوازده هزار پوجتا و بسوزانی بعد از بیان این مطالب و اخبار اینک به ذکر جمعآوری اوستای پریشان و پراکنده در هر گوشه میپردازیم ولخش یا بلاش اول اشکانی بعد از اسکندر امر کرد قطعات مونده ابستا را که پراکنده شده بود جمعآوری کردند و چرا که موبدان و پیشوایان در حفظ داشتند بدان افزودن بعد از آن پادشاه بزرگ اردشیر بابکان به گردآوری ابستا هم پرداخت و هیربدان هیربد زمان خود یعنی تنسر را که پیشوای بزرگ و از علمای مشهور آن زمان بود به جمعآوری اوستا گماشت شاپور اول پسر اردشیر نیز کار پدر را تکمیل کرد و آنچه از اوستا راجب طب، جغرافیا ستار شناسی و فلسفه در یونان و هند و جاهای دیگر جهان پراکنده شده بود به اضافه سایر جذباتی که در ایران مانده بود جمع آوری کرده همه را به کتاب مقدس افزود و سپس یک نسخه از آن را در گنگ شپیکان یا شیزکان گذاشت و در هر آتش ای نیز رونوشتی از آن فراهم گردید و در تمام مدت سلطنت ساسانیان موبدان در حفظ و جمعآوری اوراغ پراکنده دیگر کوتاهی نکردند. کتاب دین کرد که پس از برچید شدن حکومت ساسانی و در زمان هارون رشید و معمون نوشته شده است در فصل هشتم و نهم مفصلا از ابستا صحبت داشته و میگوید، ابسط فیلی فعلی مانند سابق دارای 21 نسک بوده که هر یک را جداگانه نام برده و خلاصه مندرجات آنها را بیان می‌دارد حالا هر یک از این 21 نسک کتابی که در زمان ساسانیان بعد جمع‌آوری شد ذکر میکنه. این کتاب‌ها که بعداً جمع‌آوری شد عبارتند از ابستاهای کوهن در کتابی به نام یسنا گردآوری شد و به هفتاد و دو فصل تقسیم گردید که به سه بخش جداگانه از لحاظ مفاد بازشناخته شده است دوم ویسپرد مجموعهای است از ملحقات یسنا که در هنگام برگزاری جشنها و مراسم دینی درگذشتگان سروده می شود ویسپرد به معنی درود و ستایش همه مردان و سربران و پیشوایان دین و کشور است اصلا کلمه ویسپرد 20 ویس یعنی همه رد یعنی بزرگان دین پیشوایان دین که جمع اون به نام ردانه یعشت به طور کلی موزون و به حالت شیر بوده که بعدها به علت تصرفاتی که در بعضی از آنها به عمل آمده به تدریج ترکیب شعری خود را از دست داده و به دو قسمت تقسیم می شود یشتهای قدیم و جدی واجه یشت و یسنا هر دو به معنی ستاهش و و نماز و پرستش است. یشتا خوابی اطلاعات دینی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، زراعی کشاورزی ستاره شناسی دام و به طور کلی همه علوم متداوله اولیه ایرانیان پیش از زرتوش و بعد از آن حضرت تا زمان تدوین آن کتاب نوشته شده سوم وندیداد که گرچه مطالب آن و احکام مندرج در آن بسیار قدیمی است ولی چون در زمانی نوشته شده که اوستا حتی در میان موبدان نیز رو به فراموشی نهاده بود و اغلاط گرامری زیادی هم دارد باید تاریخ تدوین آن را بعد از اوستاهای دیگر قرار داد و چهارم خرد اوستا خرد برگزیده ای از نمایش‌ها یشتها و نیازهای روزانه می باشد که در زمان ساسانیان بخش های مانند آفرینگان ها، سیروزه ها، نماز های دیگر به زبان پازند و بعدا مناجاتهایی به زبان فارسی به اون افزوده گردد. این زبان که به فارسی هخامنشی هم معروف است یعنی زبان دوره هخامنشیان بعد میبینیم دوره ساسانیان و اشکانیان زبان صحبت میکردند به نام پهلوی که اصلش از قوم پارتی ها گرفته شده بود و پرتبی بعد شد پهلوی و پهلوی اشکانی داریم و پهلوی ساسانی زبان پهلوی که اون را از جمله لحجه های پارسی میانه میشمرند از زبان های هندو اروپایی که از نظر لحجه شناسی شمال غربی ایران نسبت داشته و در میان لحجه های کنونی ایرانی در شرق یعنی ترکستان و پامیر منتشر است آثاری که مشتمل بر معطنهای اداری بوده مربوط به سه قرن اول میلادی است و اینها طبقاتی بوده است که کتابهای پهلوی ازش نوشته شده اما پهلوی ساسانی ادبیات وسیع پهلوی ساسانی اهم از مباحث مذهبی و غیر مذهبی و فرهنگ و کتب پازند به طور کلی مربوط است به لهجه جنوب ایران اما در آن ادبیات کلمات و اصطلاحات بسیاری از لهجه های شمال شرقی همان زبان پارتی یا پهلوی اشکانی باشد راه یافته است باز این زمان هم آمدند آویشتا را به روش سابق بعد از اینکه ها را جمع کردند دوباره به 21 نسخه کتاب جمع‌آوری کردند که اسامی اونها زیاده باعث دردسر میشه و فقط میدونیم کتاب‌های دینی زرتشتی بعد از یورش تازیان به ایران سرزمین ایران با قرار داشتن در چهار راه جهانگیران شرق به غرب یا غرب به شرق نه تنها مردمانش پیوسته مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار میگرفتند، بلکه منزل و معوا به شهر و ده آنان, آنان مرتب موده به دستخوش تهاجمات قرار می و میدونیم اسکندر آمد بعدا عراب آمدن بعد ترک و مغول و تازی آمدن ولی خوشبختانه به طوری که بعد یه تصور میکنن وقتی اشکندر کتابهای آتشکده تخت جمشید را سوزن دیگه تمامی کتابهای زردشتان از بین رفت این اشتباهی که متوجه نیستن اون زمان اصلا کسی از روی کتاب اطلاعات دینی به دست نمی آورد بلکه سینه به سینه اطلاعات به دست می آوردند و موبدان قدیم به هشت گروه تقسیم شده بودند و هر گروه موذب بودند بخشی از عوستا چه اون چه که مربوط به نماز و نیایش و ستایش های بود چه اون چه به حقوق و تاریخ و جغرافی و علوم آن زمان بود اینها رو جدا جدا از حفظ داشته باشند و وقتی شروع کردن به نوشتن کتاب یعنی بعد از اختراع چاپ بعد از اختراع نوشتن و اینها موبدان را طلب میکردند و اون چه که از حفظ داشتن اینها میخواندند و امروز میدونیم ما پنج کتاب داریم اول یشنو دوم ویسپاراد سوم یاشتو چهارم وندیداد و پنجام خورده عوشتا که وقتی این حجم این کتاب را رو نگاه کنیم از تمام کتاب دینی مذاهب دیگر بیشتر است ولی چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم این است که زرداشت وقتی به پیامبری برگزیده شد مردم متمدن بودند پادشاهی داشتیم به نام گشتاس به کیانی پنجمین پادشاه سرسله کیانی بود چندین سال بود این حکومت بر ایران مستقر شده بود در تمام رشته های مملکت قانون داشتیم قانون دادگستری، قانون تجارت، قانون آموزش و پرورش و حتی موبدان وقتی میخواستند یاد بگیرند میباستی، دونو علم یاد دیرند که ما در عربستا به نام آسنود خرد و گوش و سرود خرد خرد یعنی علم و دانش و عقل و اینها آسنود خرد یعنی علوم طبیعی رایه به گردش سیارات ما خورشید زمین نموه بیاهان و درخت ها و اون چه مربوط به علوم طبیعی بود یاد می گرفتند و دوم گوش و سرود خرد یعنی خردی که در گوششون سروده می شده یعنی علم منغول و می بینیم بعد از اسلام این دو علم مربوط شد به علمای دین و دو علم میباشتی بایستی فرا معقول، معغول یعنی آسنود خرد و علوم منغول یعنی گوشش رود خرد این ادامه پیدا کرد و دانشمندان ایرانی نه فقط در خود ایران اهمیت داشتند بلکه در تمام دنیا حتی قسمت عمده از مذاهب ما ایرانی ها در روم و یونان به قدری متداول شده بود که بعد از این که مسیح به پیامبری برگزیده شد و کسی نمیدونست تولد مسیح چه روزی بود؟ اینها آمدن روز پیامش که به نام جشن تولد میل جشن میگیریم اول دی اشبه یلدا باشه و میگفتیم از اون روز میر روز به روز بزرگتر و بزرگتر میشه میر یعنی خورشید. چون می دونید آخر این ما طولانی ترین شبه و اول دی که شب دی جور می گفتن ما جشنی داشتیم و پذیرایی از میمان ها می کردیم و چون طولانی ترین شد بود طرز پذیرایمون با میوه بود و قدیم می که میوه خواصی دارد که جلوگیری می کنه از سرماخوردگی از این جهت پذیراییه مهمان ها توسط ما ایرانیان در شب یلدا همین پذیرهایی با میوه بود و کلمه یلدا از ولده یول دو این کلمه آرامی است، یعنی روز تولد و منظور روز تولد خورشیل بوده. زیرا از آن روز خورشید یا روز روز به روز بزرگتر و بزرگتر می شد و بعد از مشهیهیت، چون مسیحیان ها نمی دونستن مسیح کدون روز متولد شده ولی جشن شبه یلدارا به نام تولد مهر جاش می گرفتن گفتن مسیح هم مهر دومه و همون روزی که شبه یلدارا جاش می گرفتن شبه تولد مهر جاش, م... جاش می گیرن که امروز فقط فاصله چار پنج روز بیشتر نیست 25 دسامبر جاش میگیرند. همینطور نفوذ فرهنگ و ادب ایرانی در یونان بسیار اهمیت داشت که ما اینکه وقتی اسکندر بر ایران حمله کرد و کتاب خانه های ما را سوزند نوع حسادت و رشک فرهنگی و ادبی بود که نسبت به ایران داشتن برای که در اون زمان در یونان بودپرست بودن و دانشمندانی که از علوم ایرانی به یونان منتقل دادند و شروع کردن به تبلیغ چون حرفایی که می این دانشمندان یونانی مردمان یونان یه نوع کفر می دونستن و یا اینها رو می یا مجبور می مثل سهرات بخوره یا مجبور در فرار کنن بیان به ایران دوباره و دانشکده گندی شاپور که در آخر ساسانیان در ایران در چند نقطه برپا شده بود نخستین دانشگاهی بود که در دنیا به وجود آمده بود پس میبینیم در گذشته ایران چه مراحل عالی فرهنگی و علمی داشتیم امیدواریم در آینده نیز با بتونیم مانند پیشینیانمون مانند اجدادمون دارای همه گونه فرهنگ و هنر و علوم متداوله باشین سبت هفته کتاب در پرسه قبلی بنده تا اونجا صحبت کردم که بعد از اینکه شاگشتاس فکیانی و دربارش به دین عشوزر تشتر آمدن احکام دینی و فرهنگی آن حضرت را روی دوازده هزار جلد گا یعنی پوست گا چرم گاو به خط زر نوشتند و آن را به عنوان حجت و سندیت نگاه داشتند. بعدن دانشمندان زرتشتی کتاب های زیادی بر آنها افسودند، به طوری که تبدیل کردند به بیست و یک نسک کتاب اوستا. و این 21 نسک را به سه بخش هفت کتابی تقسیم کردند. بخش اول که شامل هفت جلد کتاب بود به عنوان گاسانیک یا گاتایی یعنی احکام دینی اشودرتوش بود هفت جلد دوم مانتریک یعنی احکام دینی و عبادات و وظایفی که موبدان و پیشوایان از گاه تولد تا پس از مرگ بیباسته انجام بدن در اون هفت جل کتاب نوشته شد و هفت جلد آخری داتیک یعنی کتاب قانونی بود که خوشبختانه یکی از این کتاب ها به نام وندی داد همون کلمه داد که آخرشه باقی موند بعداً میدونیم حمله اسکندر مقدونی به واسطه اون حشادت فرهنگی و ادبی که ایرانیان در دنیای اون روز پراکنده بودند و زمانی که اسکندر به ایران حمله کرد می‌دانید ایران مذهب توحیدی اشو زرتشت داشت ولی یونانیان هنوز مرحله بت و طبیعت پرستی را داشتند و این بود که یک نوع حسادت ادبی و فرهنگی و دینی نسبت به ایرانیان داشتند و دستور داد کتاب کتابخانه تخت جمشید را بسوزانند ولی بعدن میبینیم تعداد زیادی از کتاب که در آتشکده های و با برزین مهر و این ها رداری میشد اون هم به عنوان حجت بود اگر نه مردم سینه به سینه انتقال می دادن احکام دینی و اطلاعات دینی را و لزومی نداشت اون زمان همش رو کتاب بخونن و هر قدر اینها از بین میرفت دوباره موبدان اون چه که یاد داشتن دوباره می نوشتن حالا بعد از حمله اسکندر می بینیم در زمان بلاش اول تا آخر زمان ساسانیان دوباره این کتاب هایی که به یونان و هند و چین و جاهای دیگر رفته بود و آنچه که بعدا اضافه شد دوباره جمعآوری کردند و دوباره از نو بیستویک جلد کتاب درست کردند به اون شیوه نیاکان ما بعدا میبینیم خود دانشمندان زرتشتی هفتاد و پنج جلد کتاب دیگری به اون افسودن که البته من اینجا شرحش را در قانون مدنی زمان ساسانیان که ترجمه ماتیکان هزار دازستانه اینجا ذکر کردم که برای کوتاهی بیان ذکری از اون نمیکنم کنم اگر کسی خواست اون را بیتونه اعصبیاره علاوه بر این سنگ نوشته های بسیاری از پادشاهان ساسانی به جامون که از صده سوم تا چهارم میلادی کنده شده است و اغلب به سه زبان پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی و یونانی میباشد مانند کتیبه اردشیر بابکان و پسر شاپور و غیره که در نقش رجب، نقش رستم، حاجی آباد و غار شاپور و تاق, و تاق بستان و کعبه زرتوشت و بغستان یا بیستون و سرمشهد کشف کردیده اما کتابهای دینی زرتشتیان پس از حمله اعراب کار این ویرانگری این بار به دست قومی وحشیتر از مقدونیان یعنی تازیان به این مرز و بوم صورت گرفت که با تمدن و فرهنگ میانه خوشی نداشتند. و تعصب دینی و غرور نژادی و مستی قلبه بر ایرانیان آنان را بران داشت که در نابودی کتاب ما کمر ببندند. بعضی جهت هنگام و به همین جهت هنگام یورش وحشیانه شن کتابخانه های متعدد ایران به گواهی مورخین و نویسندگان شرق و غرب سوخته شد و نسخه های منحصر به فرد کتب فراوانی که حاصل قرنها تجربه و مطالعه و نتیجه علوم نسخ فراوان بود همراه آثار هنری و بناهای تاریخی منهدم گشت به ویجه هر کجا نام و نشانی از نوشتهای ایرانی میافتند آنجا آنها را میسختند و با خاک یکسان میکردند و نویسنده اون را نیز میکشتن و به این طریق کتب فراوان ایرانیان و فرهنگ باستان این مرز و بوم دوباره تا اندازه از میان رفت در حدیث اسلام آمده است که زندیقی از حضرت صادق علیه سلام پرسید که آیا طایفه مجوس را البته مجوس از مگوش میاد و مغ به معنی دانشمنده و این کلمه معنی بسیار خوبی داره بعدن مگوش که همون گوماتای مگوش هم همین لغبراد داشت به عربی تبدیل, تبدیل شد به مجوز و منظورشون زردشتی که ما پرسیدند که آیا تایف مجوز را پیغمبری بوده یا نه زیرا من از ایشان کتاب های دیدم که در آن اندرزهای بلیغ و امسالی مفید درز بوده و از ثباب و اقاب حکایت میکرده و همچنین ایشان را دین و شریعتی است که بدان رفتار میکنن پس امام علیه السلام فرمود که هیچ امتی نیست که در میان آنان از جانب خدا و پیغمبری مبعوث نشده باشد پرسید آیا پیغمبر ایشان زرتوش بوده؟ امام علیه السلام فرمود بلی زرتوش پیغمبر ایشان بوده و کتاب زمزمه یا کتاب ابستا را آورده و گروه بسیاری به وی گره بیدن در کتاب سفینت بهار بهار مجلسی آمده که پیغمبر علیه السلام فرموده بود که اهل ماجوس را پیغمبری بوده که او را بکشتند و کتابی داشتند که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود و آن را بسوزانیدن در این دوره سیاه و جهل و نادانی و توهش اعراب بود که جمعی از ایرانیان ترک میهن کرده و به سوی هندوستان و چین و روم و کشورهای همجوار ره سپار شدند. اینان جزوات اوستا و رسالات و قطعات مکتوب را که با هزاران کوشش و فداکاری با خود نگه داشته بودند به هند و جاهای دیگر بردند که بعدا قسمت عمده آن را به زبان محلی ترجمه کردند. و در زمان خلفای بنی عباس که موقتا ایرانیان حرمتی یافتند، آن کتاب‌ها به کوشش دانشمندان باقی ماند. و زرتشیان در ایران به عربی ترجمه و از نابودی کامل نجات دادند. تدوین و گردآوری کتابهای دینی و فرهنگ ایرانیان پس از تازیان پس از برچیده شدن حکومت آمابیان، به کوشش ایرانیان به سرکردگی ابو مسلم خراسانی و روی کار آمدن عباسیان دوباره نهزت بسیار شگفت و وسیعی که میتوان آن را رستاخیز آیین و فرهنگ باستانی ایران نامید برپا گشت در این رستاخیز بزرگ مردی بلند همت و دانشمند زردشتی به نام آذرفرنبغ پسر فرخزاد در روزگار معمون به گردآوری و تدوین دایره‌المعارف م... بزرگی به نام دینکرد پرداخت پس از وی دیگری از همون خاندان به نام آذرباد پسر امید این دائرت المعارف را به, چنگ به جنگ بزرگ دینی و فرهنگی ایرانیان در روزگان المعتذر عباسی به پایان رسانی و نامه دیگری که به همین آذرفرنبغ نسبت داده شده کتاب پهلوی گوجستک عبالیش می باشد سوم بندهشت یا دیناگاهی یکی دیگر از نوشته های عرضمند پهلوی است که در آن از آفرینش گیتی سخن رفته و به جای دامداد نسک که نسک چارم عوستا باشه و از دست رفته بود دوباره به پهلوی بعد بادمهر اندرز پیشینیان اندرز خسروقبادان، اردای ویرافنامه پتت ایرانی، آفرین ششکانبار، و سود سخن و غیره پس از این نوشته ها یه بسیار کوتاه و برخی از این از سده پنجم و ششم هجری است در میان نوشته های پهلوی گزارش و ترجمه های اوستا که خانند یکی از گرانبها ترین یادگارهایی است که از روزگار ساسانیان به جا مانده در میان اینها گزارش و ترجمه وندیداد است که به تنهایی دارای 48 هزار واجه می باشد که 400 واجه آن اوستایی با تفسیر بوده و بقیه واجه به واجه ترجمه پهلویست نام چند نفر از مترجمین و مفسرین پهلوی چند تن از این مترجمین و گزارندگان عوستاب پهلوی که در ترجمه پهلوی وندیداد نامشان به ما رسیده عبارتند از گوگوشنسب ماهونز ماگوشنسب ماونداد میدیوما زربانداد و نامهای دیگری که یاد آور شده ایم. به طوری که خلاصه در این دوره کتاب بسیاری به زبان پهلوی ام از پرجمه یا تفسیر عوستا به پهلوی و پازند و به طوری که دیدیم نوشته شده که بدبختانه نام اغلب آنان و تا نام معلف اغلب آنان و تاریخ تدوین یا نگارش آن به ما نرسیده. البته بعدنم میبینیم کتاب های دیگری که از رو کتاب پهلوی به فارسی در آمده که یکی از اون خدای که پهلوی بود که بعدا شادربان فردوسی و دقیقی و اینها را به فارسی ترجمه کردند. دیگر کلیله و دمنه است که از هند آمد به فارسی به بعد پهلوی بعدا به عربی بعدا به فارسی در آمد کتاب دیگری از زبان سنسکت به پهلوی گردآوری شد که هندوها را چطورنگ که در پهلوی بعد چترنگ نامه یا شطرنگ نامه بود بختیار نامه سندباد نامه و بسیاری کتاب های دیگر که برای کوتاهی کلام از ذکر اون کوتاه خودداری میکنم و امیدواریم که ما ایرانیان ارزش فرهنگ نیاکانمون را بدانیم و متوجه باشیم که روزی فرهنگ و سیاست و آین ما با بزرگترین فرهنگ و سیاست و آین جهان دست و پنجه نرم کرد و اصول دین ما بعدن کم کم در مذهب یهود مسیحیت و مذاهب دیگر وارد شد ارزش آن را بدانیم و در درجه اول خود بر آن واقف باشیم و بعدا به دیگران بگیم درسته ما در اثر فشار روزگار ما تبلیغ نمی‌کنیم، ولی وظیفمون ارشاد هست ارشاد یعنی اگر سوالی از ما کردن ما باید جواب بدیم کتابی اگر نوشته شده ما در معرض دیده همه کس قرار بدیم این وظیفه ماست ایرانی ها هم میدانیم بعد از این که به مذهب اسلام گرویدن مسلمان عرب نشدند مسلمان شدند ولی عرب نشدند و همیشه با اعراب به خصوص خلفای بنی امیه دست و پنجه نرم میکردند و حتی میدونید خلافت در بین اعراب الشی نبود ابوبکر و عمر و عثمان بچههاشون خلیفه نشدند ولی وقتی ایرانی به طرفداری از علی علیبن طالب برخاستیم و پیرو امامت شدن ایرانیان دای آمدند امامها را به شیوه شاهنشاهی الشی کردند و میدونیم از امام اول تا امام دوازدهم ارسن بیایم دیگر رسیده و مادر این امام ها یا زن های این امام ها اغلب ایرانی هم در دوره حکومت بنی و بنی عباس و اینا ایرانی ها بر علیه اعراب می جنگیدیم تا اینکه بالاخره دوباره قدرت را به دست گرفتیم مثل یعقوب لیس سفار و غزنویان و دیالما و اینا همه از بسترا پادشاهان ایرانی و الاصل بودن که در ظاهر تحت حکومت بنی عباس یا بنی عمیه انجام وظیفه وزیفه میکردن ولی کاملا آزاد بودند. و حتی ایرانی نوع حکومت خودش را یاد بنی عمیه داد و پادشاهان عرب را درست مثل پادشاهان ساسانی بر تخ نشندن و قوانین ایرانی دوباره وضع شد و به اصطلاح درباره خلفای عرب را ایرانیان به وجود آوردند حالا این قدرت و نیروی فرمون ایران را امروز در طی زمان به وسیله مردم خواهند فهمید و میدونند و طبیعیش به قول مولانا جلال رومی میگه آن کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش بله همه تشنه اینن که ببینن فرهنگ نیاکانشون چی بوده این اون سوالات زیادی میکنن ما باید بدونیم که سوالاتی که اینها میکنند ما بتونیم جواب بدیم اگر نتونیم وظیفه اصلی خودمون را نمیتونیم انجام بدیم و خداوند ما را از بین میبره هر چیزی تا موقعی که مفیدن خدا اینها را نگاه میداره به محض اینکه از استفاده افتادیم مثل یک چیزی که گندیده میشه پوسیده میشه حالا گاهی اعراب میدونید سیاست و دین تو همه گاهی از بهرام راوری پرسیدن که دوازده امام زرتشتیان چیه حالا در دین زرتشتی اصول دین امامت نداریم ولی اینا خیال میکنن اگر ملتی امامت نداشته باشه کافره از این جهت اون شادروان بله ما هم دوازده ما هم داریم فروردین اردیوهش خورداد اون موقع کسی اینا بلد نبود محرم و برد بود یعنی طوری جواب میداد مطابق اصول اسلام ولی ما باید اینا رو توضیح بدیم که در مذهب زرتشتی سیاست از دین جداه زردوش هیچ وقت نفرمود مورده رو چجور دفت میکنیم این مال تمدن قبل از ایرانی بود و ما هم می دونستیم هیچ وقت زرتوش نگف ازدواج چجور بکنیم زردوش حتی نفرمود وضوی چجور بگیریم برای که پیش از توش مذهب مهر پرستی به قدری در تهارت و پرهیزکاری و شستشوی بدن قلوب می که حتی هر دفعه نماز سر تا پا می شستن اینه که میگن شستشوی کن و انگه به خرابات آوی تا نگردد تو این دیر خراب آلوده خراب بعد شده خرابات خراب یعنی معبد مهر که گاهی مهراب میگن گاهی خراب پس باید بدونیم تا چه اندازه سوالات اینها را مطابق موازینه دینازار توشتی جواب بدیم و تا چند داده بگیم این اختیار دست خودمونه و زردوش کاری به کاری اینکه چه جور لباس بشوریم با چه وسیله ای بشویم گفته با تغییر زمان و مکان با بالا رفتن ساعت فکر باید عوض بشه ولی بعضی ها سوال میکنند اون چیکه تو کتاب خودشون دستور داده شده و میخوان ما رو هم جواب اونها رو درست مثل کتاب خودشون بدیم و وقتی بگیم زردوش کاری به کار اینا نداره تمدن ما بالاتر بود مثلا وقتی اشو زردوش پیدا شد زنهای لورو، کردو، ولوچو، بایرامدی و ممستانی سر تا پا محجوب بودن چند تا چیز سر می بستند پیرهنشون آسینش و موچ دست دامنش تا دو پشت پا هیچ وقت کشی از دردوش نپرسی زن چجور لباس بپوشه برای که مردم متمدن بودن پس دوش کاری به کاری نداشت که زن چجور زن زردوشی باید لباس بپوشه ولی الان ما در جایی هستیم که باید این را بدانیم که در زن زردشی در هر کشوری هست باید همون لباس بپوشه که اکثریت مردمان اونجا می پوشن مثلا زن زردشی در ایران باید همون لباس بپوشه که اکثریت زنان ایرانی بپوشن در بین پارسیان هند زن هاشون لباسی باید بپوشند که اکثر مردمان هندی میپوشند. در اروپا و آس... افریقا جای دیگه که رفتیم درست زن ما هم باید لباسی بپوشه که همینه و ما هیچ وقت نمیگیم خدا فرموده ما اینجور لباس بپوشیم یا زردوش فرموده اینجور لباس بپوشیم اشول دین همون تهارته اشول نباید عوض بشه ولی راه رسیدن به اصول فرق میکنه مثلا یکی از چیزهای لازم همون گهمباره بار اصلا کلمه بار یعنی مهمانی مجانی یعنی خیر و خیرات شفه مهمانی خیر و خیرات را قدیم میگفتن بار و پادشاهان بار عام میدادند، یعنی همه را دعوت میکردن بیان غذا بخورن یا بار خاص میدادن یه ادنی مخصوص را دعوت میکردن پس شرط اصلی انجام بار خیر و خیراته اون وقت موبدا می اومد این چه که می خیر کنیم بنابوده این را تقدیس می کرده. ولی حالا خیال میکنیم کنیم گهنبارخانی همون عوستا خوندانشه دیگه خیر و خیرات اینا کناره یه قدری لرکی هم میدین به مردم که امروز به دردشون نمیخوره یک زمانی همون لرک قضای مردم بود پس گهنباری که امروز میخوانیم مطابق اصول دین نیست ما چسبیدیم به فروع دین یعنی میگیم گهنبار همین آفریگون خوندنه یا کارهای دیگر همین سطحی نگاه می کنید. و و حقایق دین را اگر بدانیم کاری می‌کنیم که دین ما همیشه با زمان و مکان جور بیاد و هر چیزی که دیدیم از زمان و مکان دور شد باید رها کنیم مثل یک زمانی نیرنگ و پجاو به کار می بردیم برای زده و پونی. چی شور می شدیم نمیدونم وندیداد می خوندیم برای مرده ها جشت ویسپرد می خوندیم کارهایی می کردیم ولی امروز یه چیزهای بهتری همون گاتا بخشی از گاتا می خونید پس اشول دین با فروغ دین فرق داره و امیدواریم ملت این را در نظر داشته باشه و خیلی دنباله این نریم که ببینیم ممس و بامس من جور زندگی میکردن گاهی اونها مطابق شرایط زمان و مکان هر کار میکردن درست بود ولی امروز اصل را باید نگه داریم و فر با تغییر زمان و مکان باید عوض بشه با بالا رفتن فکر باید عوض بشه و اگر عوض نکنیم فروع دین اصول دین را هم عقب میندازه. و اون وقت ما یک افرادی میشیم بی فایده و خداوند چیزی که فایده نداره از بین میبره